پادشه را بر خیانت کسی واقف مگردان، مگر آنگه که بر قبول کلی واسق باشی، وگرنه در حلاک خیش سعی میکنی. کنی. بسیچ سخن گفتن انگاه کن، که دانی که در کار گیرد سخن.